باب الصلاة في السفر باب بادي صلاة دار سفرها إذا سافر مسافر ستة عشر فرصخا سفر طاعة أو مباح في بر أو بحر قصر صلاة الظهر والعصر وإشاء الآخرة ركعتين بدلا من أربع إن شاء اذا نوال قصر مع الاحرام خوب دقیق داشته باشیم میگه زمانی که مسافرت کرد مصافری شانزده فرسخ شانزده فرسخو در کتاب منهجی یکی از کتب شافعی هست 81 یک نوشته بود و در کتاب اللوباب فی فقه الشافعی 88 و خوردی کیلومتر خلاصه زمانی که مسافرت کرد مسافری 16 فرسخ ولی سفرش سفر اطاعت و مباحی بود برای کار مثلا اطاعتی بود سفرش اطاعت بود تاعت بود مثل حج یا سفر مباحی بود و رفته بود برای کار مباحی چه در خشکی بود چه در دریا؟ مأسیت؟ میشون ره, ره. پس زمانی که مسافرت کرد مسافری شانزده فرسخ سفر تاعت یا سفر مباه مأسیت نه در مأسیت جایز فقهان به دو گروه هست گروهی که میگند چه تاعت باشه چه مأسیت فرقی نمی کنه از ایمه چارگاره دوتاشون این نظر رو دارن دوتاشون میگن نه فقط سفر طاعت باشه خب پس زمانی که مسافرت کرد مسافر شانزه فرسخ و سفرش طاعت بود یا مباه بود چه در خشکی بود که در دریافت می میخونه نماز ظهر و عصر و اشار و دو رکت میخونه به جای چار رکت اگر خواست چون در مذهب شوافه اختیاریه یعنی رخصته ولی در مذهب احناف قصر خوندن رخصت نیست عزمه یعنی باید دوتا بخونه در ده هنف باره میگه ایدانه نوال القصر مع الاحرام البته یا زمانی که نیت کرده بود قصر خوندن رو هنگام احرام هنگامتیش و الصبح و المغرب و في السفری والحضار سواهم صبح و مغرب در سفر و در حضر با هم مساویان یعنی چه مسافرت باشی چه در حضر باشی دیگه نمیتونی مثلا مغربو بیای بیا یک و نیم بخونی در سفر نمیتونی بیا یعنی صبح یک و نیم بکنی پس مغرب و صبح در سفر و حضر تعدادشون یکیست و یا بتد القصره اذا فارق آخر آخر بنیان یا بنیانی بلده و شروع میکنه کنه قصر رو زمانی که جدا گشت از آخرین بنیه و ساخته شهرش اگر تا زمانی که از آخرین بنیه شهر خارج نشده ولی اون که نیت سفر رو کرده باشه پس شروع میکنه قصر رو زمانی که از آخرین بنیه شهرش خارج گشت جدا شد و اذا نوال قصر و تمامه اتم تغلیفا میگه زمانی که نیت کرده بود هم قصر و هم تمامه دیگه اینجا کاملش رو میکنه و اذا سل المصافر خلف مقیمه او خلف من لا یدری مسافر هو او مقيم اتم میگه زمانی که خان مسافر پشت شخصی مقیم امام پشت امامی مقیم یا پشت امامی که نمیداند آیا این امام مسافر است یا مقیم است اینجا میگه شخص مسافر نمازش رو کامل بگیره ولو و لو صلى خلف مسافر نوى تمامه اتم واگر نماز خواند پشت امام مسافری و نیت کرده بود که کامل مخونه نیت تمام کرده بود یعنی نیتش شکسته نکرده بود چار کرده بود اتمه اون موقع چی کار میکنه تمام میکنه یعنی کامل میکنه دیگه شکسته نمیخونه نوا القصر جاز ان یقصر و اگر نیت قصر رو کرده بود پشت امامی مقین دیگه جائز است که قصر میکنه و اذا نو المصافر اقامت ثلاثت ایامن فما دون ذلك قصر زمانك نيت كاردوود شخص مصافر ماندن السروزرو فما دون ذلك يا كم ترأ السروزرو قصر بيتون انشكار بكوني قصر بخوني ولو نوى اقامة اربعة ايام اربعة ايام فصائدا اتم واغر نيته اقامه بود چار روز و بالاتر پنج روز شیس روز بالاتر اتم در این حالات نمازو تمام بخونه ولو مر ببلد یلو الخروج منه اذا انقضت اشغاله فیه بعد یوم او یومینی فاستمر ذلك به فله ان یقصر تمام اربعت ایام بیگه اگر رد شد از شهری که نیت کرده بود که از این شهر خارج میشه زمانی که هاش تمام شد بعد از یک روز یا دو روز فستمر ذلك ولی کاراش تموم نشد و خلاصه موند فستمر ذلك استمرار یافت فله يخسر تمام 4 تيام، انجا اجازه داره که قصر بخونه چهار روزه کامل رو، فله تمام پس برای اوست یا اجازه دارد که قصر بخونه کامل چهار روز، رو. روز رو. و بعدها و بعد از روز دیگه نمازت تمام بخونه، الا که یکون محاربه. مگر اینکه که جنگجو باشه مگر اینکه که تو اونجا چه برای غزوه و جنگ رفته باشه فیستکملو القصر سبعت عشر یومن او ثمانیت عشر یومن میگه اونجا دیگه قصر رو هفته روز یا هشته روز قصر میخونه پس قصر میخونه تا هفده روز یا هشته روز ثمه یوتم بعد از هشته روز دیگه کامل می کنید خب این روایتی که اومده 18 روز روایت هست 19 روز 18 روز ولی امام شافعی رحمت الله علیه اینو مخصوص کسی کرده که چی جمع می اینجا اختلافات در این رابطه این قد زیادند که از 20 قول هم بیشترند که آیا بصافت چقدر باشه و تعداد روزها چقدر باشه اه؟ تعداد روزها رو بعضی سه روز گفته عن. بعضی پونزه روز مثل احناف احناف میگه اگر پونزه روز رفت جایی مسافره بعد از اونش دیگه نه شوافق خب میری بود که خوندیم برخی از فقه ها مثل ابن میگه اگر سالها هم بود مشکلی نصافره احناف نه احناف مگن اگر رفت جای رفت و مشخص نه بود آ؟ معلوم نبود که کارش چقدر طول میکشه اگر ساله ها هم بود و تفصیلاتی هست ولی ابن تامیه نه ابن تامیه کاری به اونش نداره. بدون اون تفصیل میگه تعداد مهم نیست در مسافت هم میگن عرف میگن چی نظریات خیلی مفصلی داره ما فیلان این عبارات شو حل ميكولي باندازة توان خوب كجا رسيدين باله وله الجمع في سفره بين صلاتي الظهر والعصر في وقت أيته ما شاء ميقى اختيار داره وله موقع قفت اگر قفت عليه يعني برش لازمه اگر قفت له يعني اختيار داره ميقى وله الجمع في سفره بين صلاتي الظهر والعصر اختيار دار الجمع کردر در سفرش بين دون ماضي الظهر وعصر در هر وقته خاص هلو چه در وقت الظهر چه در وقته أصر وبين المغرب وإشاء الآخرة في وقت أيته ما شاء وهمتونين اختيار دار بين المغرب وإشاء جنب كونه در هر وقته كدلش خاص فإن قدم الثانية إلى وقت الأولى نوى الجمعة مع إحرامه بالأولى ثم أقبها بالثانية میگه اگر مقدم کرد دومی را به اخت اولی یعنی جمع تقدیم انجام داد اینجا دیگه جمع نیت میکنه انگام احرامش تکبیر احرامش بعد اولی رو میخونه و بعدش هم دوومی رو پس نیت میکنه جمع رو با احرام اولی سپس هم دومی دو یعنی نمیتونه اول بیاد دومی دو رو بخونه بعدش اینجا ترتیب در جمع تقدیم شوافه میگن ترتیب واجبه ضروریه ولا يتنفل بينهما بینهما از شراعت جمع تقدیم اینه که وسطشون نمیتونه نفل بخونه ولا يؤذن و نمیتونه هم از آن بگه فیقتا جمع بین دو جمع دیگه قطعی نشه لكن یقیم اما اقامه میکنه فا آخر اخر پس اینجا به تقدیم مسائلش تموم شد فا آخر اخر الاولا الى وقت ثانیتی اگر به تأخیر انداخت نماز اولی رو به وقت دومی یعنی تأخیر انداخت ظهر رو به اصر یا مغرب رو به اشاب اخرها به نیت الجمعی اولی رو این موقع با نیت جمع به تاخیر میاندازه این موقع که نمیخونه اونو به این نیت که من بعدا چیکارش میکنم جمع و قدمها علی ثانیتی اذا دخل وقتها میگه مقدمش میکنه بر دومی زمانی که وقتش داخل شد ولی در فقه منهجی من خوندم در جمع تاخیر ترتیب شرط نیست و موالات هم شرط مثلا در وسط شو ولا يجمع بين الصلاتين في الحضر إلا أن يكون مطر فيجمع بينهما في وقت الأولى منهما في مسجده لا في منزله إذا أراد أن يصلي جماعة لا فراده ميقجام نمي خانات بين الدنماز در حزار مقر انكباران باش خب خدا رو شکر در مذهب امام شافعی رو همه تلاله جم هست در امام مذهب امام ابو هنیفه رحمه الله جمع جایز نیست اصلا جم و جز کبائر میدونند جم و فقط یک جا جایز میدونند در مکه برای حجاج در مزدلفه و از نماز ظهر و اسر و مغرب اونجا دیگه کلن جم و مطلقا جایز دونند میگه جم نمی کنه بین دونماز در هزار مگر زمانی که باران باشه اینجا جمع میخونه بیرشون در وقت اولی جمع تقدیم فقط جایزه خوب دقت کنیم جمع چی؟ فی مسجد هی فی منزله اون هم در مسجد نه در منزل تو منزل تنهایی بیاد بخونه اگه من جمع اخی علت بارانی این ایک مشقته تو که تو خونه دیگه مشقتی میگه در مسجدش نه در خونه زمانی که خواست نماز و جماعتی بخونه نفراده پس این اینا شرایط جمع کردنه. نماز باران بودن که ذکرش کرد رو در روز باران نه که نماز باران در روز باران بله و ارا جواز الجمعی بینهما فی المرز میگه و میبینم یعنی نظر من بر هست که جایز جمعی جمع جم کردن بین دو نماز در مریضی خدایشون جزای خیر بده یورید الله بکمل یسر ولا یورید بکمل بکمل عسر مذهب خودمون سختره تو این مسئله البته سختی آسانی مهم نیست ادله مهمند که عدله ظاهر عدله با مذهب شوافه هست الله مطال خواهد